لحظات خبری سرای خلافه گزارش‌های همه جانبه از فعالیت‌ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سرای خلافه شما را از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر می سازد. و از تبلیغات دروغین رسانه‌های غربی پرده بر لحظات خبری صلاح خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امروز چهار شنبه نزده رجب سال 14 و هفته هجری او مسلم خراسانی استم توجهتان را به خبرهای خراسان جلب می دارن. در یکی از پوسته های فوج پاکستان در یکتوط شهر پشاور حمله صورت گرفته که در نتیجه دو تن پولیس پاکستانی کشته و دو زخمی به جا گذاشت. و همچنان در همین شهر در اطراف مسجد سنهری بالای یک موتربسی که سکرطرهای پلیس پاکستانی را حمل میکرد انفجار صورت گرفت که در نتیجه هفته تن پولیس کشته شدند که در بینشان دیسپی و پسرش هم شامل باشد. و همچنان در بالامانه همین شهر بالای دو پلیس پاکستانی که سوار بر موتر در حال حرکت بودند مجاهد خلافت اسلامی حمله نمود که در نتیجه یک تن از آنها کشته شده و دیگرش زخمی گردید یک عضو شبکه اس آی در شهر مردان از سوی مجاهد خلافت اسلامی کشته شد اداره دیوان حزبه در مناطق عدل خیل پیخه و کود مسئولین جدید را به کار گماشتند اداره تعلیم و تربیت تعداد از متخصصین را به کار آماده ساخت قرار است این فارغان به مدرسین مدارس نحوه تدریس را بیاموزند و خبر اخیر این که اداره تعلیم و تربیت خراسان کتاب چاپ شده را به مدارس تحت اداره توزیع نمود برادران گرامی این بود اخبار ولایت خراسان و حال توجهتان را جلب می دارم به ولایت دیگر خلافت اسلامی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 لحظات خبری صلاح خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امروز چار شنبه 19 رجبی سال 1437 اجری قمری با خبرهای جهانی دولت اسلامی خوش آمدید بسم الله الرحمن الرحیم گزارش های رسیده از شهر سامر را در عراق حاکی است که مجاهدین دولت اسلامی دو متر نظامی نیروهای بسیج رافیزی را در منطقه الجلام در شمال شهر سامر را هدف انفجار ماین قرار دادند که در نتیجه دو وسایل نظامی مسکر از بین رفته و شش رافیزی کشته شدند آجانس خبرگزاری اماق می‌رساند که مجاهدین دولت اسلامی یک حمله نفوذی را در حومه شمالی حلب را اندازی نموده و سپس مناطق دودیان، تلیل الحسن و فیروزیه را تحت سیطره شاندر آبردند این در حال است که ولایت حلب در این نواخر شاهدی در بین مجاهدین خلافت اسلامی و مخالفانش است همچنینان یک خبری دیگر از عراق می‌رساند که یک اراده موتر بولدوزر نیروهای شیعه در اثر شیلی که یک موشک هدایت شونده در منطقه دولاب در شرق البغدادی از بین رفته است آخرین گزارش ها از درگیری‌های سوران در حلب می‌رسانند که مجاهدین خلافت اسلامی هفتمین حمله صحوات بر روستای کفران را نیز دفع در امین حال برادر استشادی ابول حسنی مغربی با موتر مملو از مواد منفجره یک تجمع نیروهای صحوات را در این روستا هدف قرار داد که در نتیجه بیش از ده تن کشته و تن دیگر زخمی شدند همچنان در این حمله استشادی یک موتر نظامی نیز از بین رفت پس از این حمله صحوات مجبور به عقب نشینی شدند نیروهای مخالف با حمایت حملات طبخانهی ترکیه در بین یک هفته هفت بار تلاش کردند تا رستای کفرغان را تسخیر کنند اما با فضل الله تمام حملاتشان به ناکامی انجامید یک تحقیق تازه که از سوی مجله نوه و نشر رسیده است از تعداد تلفات دشمن در ورابر درگیری‌های های خلافت اسلامی در شش ماه گذشته در سرزمین شام پرده برداشته است متن این تحقیق قرار زیل است نتایج غزوات مبارک در سرزمین شام تای شش ماه اول سال 1437 اجری قمری بیش از 6700 کشته و زخمی از دشمن 150 عملیات استشادی در ولایت های مختلف شام 300 وسائل نظامی از قبیل تانک و غیره منهدم گردیده است تلافات دشمنان بر اساس گروه ها نظام بیش از 4817 کشته و زخمی داده است 264 وسائل نظامی و نقلیه شان از بین رفته و 75 عملیات استشادی از سوی دولت اسلامی و ارنسایری ها صورت گرفته است. نیروهای صحوات در 6 ماه گذشته بیش از 466 کشته و زخمی داده ده دو وسایت نظامیشان تخریب گردیده و 13 حمله استشادی بالایشان صورت گرفته است. مرتدین پکک در 6 ماه گذشته بیش از 1477 کشته و زخمی داده اند. چلو وسایت و نظامی و نقلیه‌ای شون از بین رفته و 62 عملیات استشاری بالایشان از سوی دولت اسلامی صورت گرفته است این بود خبرهای جهانی خلافت اسلامی پس از یک وقفه کوتاه توجهتان را به اعلانات اداری ولایت خراسان جلب می‌دارم قیام حجت پرسش‌های ادوغ حقمت قائم کردن حجت قبل از استطال مباحثه سیاسی، فرهنگی، فکری و اقتصادی در مفاهیم شرعی پنجشنبه شبها از رادیو صدای خلافت نوت اف ایم زلزلت ارکان هم حطمت احلامه به تمام مجاهدین ولایت خراسان رسانیده می شود که هیچ گونه تماس مخابراتی با عربکی ها، اردوی ملی و افراد طالبان برقرار نکنند و همچنان مکالمات به آنها و دعوت از طریق مخابره و جواب به احترامی های آنها ممنوع بوده زیرا ایشان مردمی که نه قانون دارند و نه نظام باید به حال خودشان گذاشته شوند هرچی میگویند بگویند و همچنان پخش ترانه ها و بیانیه ها نیز در مخابره ممنوع بوده. هر کسی که از این حکم سرپیچی نموده و آن را نادیده بگیرد از سوی شرطه اسلامی جزای سنگین خواهند دید. برادران متلع باشند. اعلامیه دیوان دعوت والمساجد ولعت خراسان با تمام برادران مسلمان ولایت خراسان رسانیده می شود که اوقات نمازهای مفروزه سوی دیوان دعوت والمساجد دعوت والمساجد به طور منظم ترتیب گردید و در آینده در اوایل هر ماه الله به تمام مساجد توضیح خواهد شد و همچنان تقسیم اوقات نمازهای پنجگانه برای یک سال در یک صفحه جا جا خواهد شد اکنون از لایحه و منهج تدبیق این تقسیم اوقات قرار زیل شرحگردید و به تمام باشندگان ساحه خلافت قابل اجرا است. اول بعد از آزان مسئولین اداره دیوان حزبه در دقیقه قبل از وقت به ادای نماز دعوت میدهند پس از این اعلان همه مردم برای ادای نماز آمادگی بگیرند دوم برای ادای نماز همان وقت اعتبار دارد که در نقشه منتشره اسی دیوان حزب، اسوی دیوان حزبه موجود است، و مخالفت از این نقشه جرمست و دیوان حزب متخلیفین را تحذیر خواهد کرد. سوم، موزنین مساجد با دخول وقت آزان خواهند داد و از وقت تاخیر نمی کنند. نماز مغرب پس از ده دقیقه از غروب و نمازهای دیگر پس از 15 دقیقه از آزان خوانده می شود. دکانداران با شنیدن نعره آزان دکانهایشان را بسته و پس از ختم نماز جماعت دوباره باز می نمایند. و آن داد دکانداران هم در این جمله داخلند که قبلا در جای دیگر نماز خود را ادا نمودند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته همه جهانیان امجا شدند مثل درنداری اولایت متحدی مجرمه در جنگ سلیوی شریک شدند و هی نظامی غلام و نظام مزدور و نظام مرتد و کافر در افغانستان چی کردن پس این نظام چی حکم داره نظام که متشکل متشکل از امال مزدوری است نظامی که متشکل از غلامان مزدوری زرخریدی است که از جعای مختلف جمع شدن نظامی که متشکل از افراد منحرف و مرتدی است کنارا دائری اسلام پاک در مسعود دائری کفر و در ننجا جا در این نظام پس این نظام تکیف شریش چیست؟ این نظام حکم شریش بارش چست؟ این نظام قرآن به سرحت ایران می اینطور نظامات است این نظام افری است. چرا این نظام حکوم منزلله رو میکنه پس نظام کوفری شد. این نظام معاللتش کهکس با دشمنای الله از وجاج است. معاللت دشمنش کس باقی است با دوستان الله از زیوااج است, با, است؟ با, با مجاهدین است با مسلکمی است. این نظام با طاغوت حکومت میکنه، فیصله میکنه، فیصله ایش است. مشاهده میکنیم که به بدن خودی بالا متغیر اینا انتخاب میکنند. اینا کسایی که در پهلوی پیماناتو قرار گرفتن. بلکه ازونا ازونا هنوزان دعوت میکنن که اینا مزید اساکیر و بیشتر باید در افغانستان بفرستن. و بدون شک اینا کسایی هستند که در موارد و خفار قرار گرفتن. نظام طاغوتی در افغانستان حاکم ساختن. ما در بخش بخشی نظام در افغانستان مشاهده میکنیم کی نظام طاغوتی نابسامانی باشه مشاهده میکنم در افغانستان که در هر بخش هر جای عباد اجتماعی اقتصادی و سیاسی زندگی خود ما اینو مشاهده میکنیم فاساد دامنش روزانه واسطه تر شونه میره همه استمداد از قانون اساسی یا از موه و تقوات مقدس خورشان میکنه که با او استمداد میکنه دوستا هنت استعانت به خاطر از نشر از این قانون پس این نظام فیلی که در افغانستان حاکم است این نظام کفر است نظام کافر متوجه باشین نظام کافر است. حکمی مانزر الله نظام تاغوتی است که ما باید با تاغوت باید کفر خود اعلام کنیم و این نظام که است نظام مواراتش با دشمنایی، الله حسابه جل است و دیگه ما خیلی بیشتر دیگه داره. این مفاسد برش کافی است که از دائره اسلام چکنه دائره اسلام بیرم پس این نظام نظام کفری است، نظام تاغوتی است طاغوت شيناسي طاغوت شيناسي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا لانفصام لها والله سميع عليم الطاغوت دوتين دوتين لا تصدني یک تحریف مشهور است که تاغوت او را عبادت کردن می شود دیگران او را عبادت می کنند و او از عبادت دیگران راضی باشد این را تاغوت می طاغوت حکومت تاغوت عبادت تاغوت اطاعت و متابعت. و کسی که دعوه می کنه که بالله با و تعالی ما ایمان داریم به توحید ایمان داریم لیکن قلبان طاغوتا دوست داشته باشد یا زبانان این تاغوت تاریخ می داشته باشد یا امضان از تاغوت اطاعت می داشته باشد یا از جمله‌ی نواقض کلمه از جمله‌ی نواقض ایمان است این برنامه را دوشنبه شب ها و چهارشنبه شب از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید <تصفيق> ک دیی بسم الله الرحمن رحیم سلاممانم رحم الله بارت تو شیناندگانی از زی رادیو صده خلافت خسته نباشید امید است او را که با برنامه های رادیو مای برای مینماییت خوش بگذرد باز هم امروز مع رحمانی روحانی در برنامه هایطاقشیناسی مزبان شماستم امروز چهارشنبه و از شروع شراتی دوباره مو نیز یک هفته مگذرد در این نفته در کنار برنامه های علمی برنامه های خبری تفریحی نیز به نشر رسید امید است سر زمروز نیز ما را تعقیب نمایید و از برنامه های مختلف مستف شوید همچنان شما نیز می توانید با ما یک جا بهفالیت های نشراتی شریک شوید اگر صدای ما را از طریق رادیو میشنوید، برنامه ها را ثبت نموده سپس در صفحات اجتماعی اینترنتی بنشر نشر امید است اجری بزرگ نصی شود حال میریم سراغ اصل برنامهینیطقوت شناسی در برنامهی گذشته روی تعریف لغوی و شرعیطاقوت و همچونان اقساامیان بحث نموده بودیم در برنامهیم روززی، روی اقصام تاقوت نظر به اصرها و راه های اجتنابازان بحث می کنیم اگر ما از دیدگاه علم ساینس به اقصام تاقوت نظر اندازیم باز هم می توانیم را به بخش های مختلف تقسیم کنیم تاقوت های قابل لمس و تاقوت های غیر قابل لمس در گزشته ها به شکل ملموس در جامعه قد علم می کرد که عبارت از بوتها، قبور، اشخاص و غیره اما در عصر کنونی تا به شکل غیر ملموس و بدون شکل ظاهری در جامعه به پهخسته و مسلمانان از شناخت آن نیست عجز آمدن و این هم نظام دموکراسی و متعلقات آن است همین ها و مسائل دیگر را با محترم مولوی سید عبدالستار منیب در میان میگذاریم که اینجا در استودیو مهمان ماستن. هستن نخست از همه به برنامه خوش آمدید جزاكم الله ما هم بنوبه خود به شنوندگان عزیز سلام و خود تقدیم می السلام و علیکم و الله و برکاته انجازا که الله خیرا مال ثب سوال اول از این قرار است که چرا مسلمانانی امروزی در شناختی تاغت های که شکل و جسم ظاهری نداند مانند دموکراسی آجیزن در حالی که یک بوتی و یا صنامی به اینوانی تاغت برایشان تقدیم شود احساسات دینی آنها بجوش میبرد و از آن انکار کار می کنند الحمد الله نحمد هو استعیل و هو نطافیر هو بهی و توقل و, و علی؟ و نعود الله این شور انفسی و سعات عملی من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله در قدم أول تشكير شما كي برايم فرصت مساعدنا مددكي أز طريق أمواج راديو خلافات در برابر اشنوان دهاء أداي مسؤوليتنا مايم ودر قدم دوام پيش از انكي بسوال شما جواب بغيام بايد بغيام كي موضوعي كي شما ده این برنامه انتخاب نمودی واقعا بسیار یک موضوع مهم هست که عبارت از شناخت تاغوت شناخت تاغوت ای از مهمترین موضوعات هست زیرا شناخت تاغوت از شناخت الله هم مقدم هست الله سبحانه و تعالی می فرماید که ومن یکفر بالطاغوت و بالله فقد استمسك بالعروت الوثقه لا انفصام لها والله سميع علیم یعنی کفر بالطاغوت را الله سبحانه و مقدم از ایمان به الله ذکر کردگی هست. و حق هم کفر به مقدم از ایمان به الله هست. وقتی که کفر به تاغود مقدم از ایمان به الله هست، شناخت تاغود هم مقدم هست. اما باید بگویم که در جواب سوال شما که ایران ایرانمودید، چرا مسلمانان امروزی از شناخت های اصلی که شکل ظاهری ندارن و یا غیر ملموس هستن، مانند دموکراسی و غیره آجیزان در اینجا سه نقطه مهم است نقطه اول است که بربالای مسلمان ها یک فضا غفلت حاکم شدگی گی است مسلمان ها در نهایت غفلت زندگی بسر می برند حتی اکثر مسلمان های عوام با نام آشنا نیستند و کسانی هم که با نام آشنا هستند از حقیقت و مفهوم طاغوت خبر ندارند تاغوت را با مو های مجسم که از زمانه های قدیم مسلمان ها و مؤمنین موحدین در مقابلش مبارزه نمودگی هست، به امون و به مو اشکال میشناسند. اما از حقیقت و مفهوم حقیقی تاغوت غافلان. دون نقطه همی است که مسلمان ها ظاهر فرست شدند. همه به ظاهر اشیا فکر میکنند. مثلا باید بگویم که مساجد هست، مزین هست، مردم پنج راه نماز در مساجد میخوانند، اما در مساجد در مقابل نظام اسلامی و خاطر مزین ساختن نظام های تاغوتی هم، گبزده می شود و همچن مدارس هست کشورها نام اسلامی هست ظاهرند فقط معتقدمی ظاهر اشیاء هستند ظاهر پرست شدند سیوم نقدمی است که قسمی که شما هم در سوال ایران مدید که مسلمان ها در برابر های مجسم یک احساسات دارند لیکن ایران باید بگویم که این احساسات هم یک احساسات مورسی هست نه فکری وقیدوی از این رو وقتی که دشمن و تاغوتان اثر ای فهمیدن که مسلمانها هرچند در برابر تاغوت های مجسم یک نوع احساسات دارند ای را نمی که خواب یک تاغوت مجسم را عبارت از بوت است یا آتش پرستی هست با این اشکال قد علم نموده به مسلمان تقدیم شوند به یک نحوی دیگه به یک نوعی دیگه که از فرصت غفلت مسلمان ها وزاهی پرستی مسلمان ها استفاده نموده به یک نوعی دیگه اینا قد علم نمودن که عبارت از دموکراسی است و غیره و نظام های جمهوری و به همراه ای یک نام دیگر هم اضافه کردن که جمهوری اسلامی مسلمان ها ظاهر پرست بودن که فقط به همه اسلامی اسلامیشان فکر کردن اما حقیقت و مفهوم دموکراسی به زا فکر نکردن غفلت کردند از این رو مسلمان ها از شناخت طاغوت امروزی عاجز ماندند بله همین کلمه جمهوری اسلامی در حقیقت جمهوریت ضد اسلام است که ای معنای می رمیت که جمهوریت یک چیز پلید است و اسلام یک چیز پاک چیزای پلید و پاک یک چیزی جور کردن و به مسلمانان تقدیم کردند مسلمان هم که معلومات درست از جمهوریت و از نظام های طاغوتی آگاهی نداشتند و را به عنوان یک کشور اسلامی پذیرفتند هر کشوری را که نامش جمهوری اسلامی بود این مسلمان های امروزی که ساده لوح هستند و از حقیقت چیز آگاهی ندارند این حکومت ها را به عنوان یک حکومت اسلامی میشناسان مسلمان ها مختاد باشند و از استعمال از تو جملات خودداری کنند چرا که جمهوریت ضد اسلام بین از اینا منافات است که یک چیزی پلید و یک چیزی پاک یک جا هرگز جمع شده نمیتونه به صورت خوب اشاره فرمودین مولوی محترم حال مروین با سوال بعدی مسلمانان امروزی در شناخت های عصر که در همه دنیا گسترش یافته چی باید کنند و راه های علاج چیست و شما چی دستور عملی را به ایشان تقدیم میکنین خوب مسلمانان امروزی در شناخت طاغوت و بیرون بر از این باید از غفلت بیدار شوند و در طلب و جستجوی حق باشند همچنان الله سبحانه و تعالی میفرماید که والذین جاهدوا فینا لنهدیهم سبُلنا در این آیه کریمه الله سبحانه و به کسانی که در راه الله جدجهد میکنند مجاهده و وعده که به صراط مستقیم به راه مستقیم هدایت میفرماید و نیز در یک آیه دیگه الله سبحانه و می فرماید که والدین اجتناب ای ان و وانابوا الى الله لهم البشره فبشر عباد کسانی که در شناخت طاغوت جستجو میکنن و در نتیجه را شناخته اجتناب میکنند و تنها و عبادت الله رجو میکنن برشان بشارت میدهد که برشان در دنیا و آخرت بشارت هست حافظ ابن كثير رحمه الله می فرماید که این آیه درباره زید ابن عمرو بن نوفل و ابو و سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه مجموعین نازشدگی هست و اینها کسانی بودن که قبل از بیعت نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاغوت را شناخته و از او اجتناب کرده بودن در شناخت تاغوت جدوجهد کردن طلب حق کردن و در نتیجه هجرت کردن به دیار اسلام به دیار اسلام هجرت کردن از ملک فارس سلمان فارسی هجرت فارس کردن به مدینه منوره به کاروان حق پیوستن و مسلمانان امروزی هم باید از غفلت بیدار شده و در جستجوی حق شده از سرزمین های طاغوتی به سرزمین خلافت به سرزمین اسلام هجرت نمایند به حقیقت و مفهوم حقیقی طاغوت ببرند و از اجتناب بکنند بله ضرور است برای مسلمانان که و سوی دیار اسلامی و سرزمین خلافت هجرت کنند اجای طاغوت به صورت درست می توانند بشناسند شناسایی کنند و از این جه میشه طاغوت به صورت درست شناخت حال میاییم به سوال بعدی که از این برای برایه تفاوت میان نظام اسلامی و نظام طاغوتی و کفری چیست؟ تفاوت میان نظام اسلامی و نظام طاغوتی نظام اسلامی یک نظام فراگیر و معنا یک نظام کامل هست اما بالمقابل نظام طاغوتی در جهان کنونی متفاوت است و نیز شامل نواقصات زیادی هم هست و یک نظام به خاطر زید بشریت و زید انسانیت جوشدگی نظام هست و اساساً بویم که نظام اسلامی استوار هست بر قوانین الهی بر وحی الهی که امارت از قرآن و سنت هست و نظام تاغوتی استوار هست بر قوانین وضعی بشری که در مقابل قرآن و سنت جوش داده و وضع شده هست در حقیقت یک چیز دیگرم میشه برای اشاره کرد که نظام اسلامی در حقیقت سعادت دنیا و آخرت رقم میزنه و نظام تاقوتی تنها دنیاست و آخرت نداره کسایی که پیروی هست مکومت های تاقوتی و نظام های کفری میکنن اینا فقط دنیا دارن و آخرت خود از دست میتن تشکر مالیسی حال تفاوت میان نظام اسلامی و نظام تاقوتی را شناختم و تفاوتشی در کجاست؟ است؟ میرم به سوال بعدی مسلمانان در شکستن نظام های و اقامه نظام اسلامی که همانا خلافت اسلامی است چی مسئولیت دارند مسلمان ها باید مسئولیت و فراز خدا بشناسند اولین ما فرض الله بر بندها کفر به طاغوت و ایمان به هست همچنان الله سبحانه و تعالی می که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان یعبدوا الله وجه الله سبحانه و تعالی می فرماید که در هر امت ما رسولانی فرستادیم و پیام رسول و پیغمبر ها بود که تنها به الله بندگی بکنید و از طاغوت اجتناب ورزید از این رو مفسرین می که اولین پریزه بر بنده اجتناب از طاغوت هست کفر به طاغوت هست و ایمان بله هست اما مانای کفر به طاغوت چی هست؟ مانای کفر به طاغوت در قدم اول اعتقاد بر بطلان عبادت غیر الله و عبادت طاغوت اعتقاد باید کرد که عبادت غیر الله عبادت ای باطل هست. در قدم دوم ترک آن عبادت غیر الله و عبادت طاغوت را باید ترک کرد و در قدم سوم با عبادت غیر الله و با عبادت طاغوت بغض قلبی باید داشت اما در اخیر اهل تاغوت را تکفیر نموده و همراهشان دشمنی و عداوت باید کرد وقتی که ما کفر بتاوتی میکرده باشیم با همراه اهل طاغوت دشمنی نموده و نظام طاغوت را باید سرنگون بکنیم وقتی که نظام طاغوت سرنگون شد در جایش نظام خلافت و نظام اسلامی جایگزین می شود شما اشاره کردین که مسلمانان مسئولیت دارند که نظام طاغوتی را بشکنانند و در این وضعی نظام اسلامی را قائم بکنند حال نظام اسلامی الحمدلله قائم است خلافت اسلامی در اکثر ممالک جهان ظهور کرده که مرکزیان آن دارالخلافه در عراق و شام مکمل صد فی وجود خود به قرآن و سنت بخشیده و ایجا قرآن و سنت تطبیق میشه و ایجا احکام تاغوت و حکومتهای تاغوتی نمیچله ایجا مکمل مسلمان ها که اجرت کردن و این خلافت تأسیس کردن و کسانی که در زیر سای خلافت زندگی میکنن مکمل وجود خدا به دین تسلیم کرده که با اسلام زندگی کنه با حکومت اسلامی زندگی کنه حال میائیم به سوال دیگه حکم زندگی تحت نظام‌های طاغوتی چیست کسانی که زیر نظام طاغوتی زندگی می‌کنند یا خود طاغوت هستند مثلا علماوی سوئی که به نظام طاغوتی مشروعیت میبخشند، خودشان در طاغوت متابعت داخل هستند زیرا مردم در باطل پیروی اینا را میکنن، اینا اینو می گردن. این در طاغوت متابعت داخل میسن و یا هم اطاعت از طاغوت می‌کنند این هم خود کفر است اطاعت یک کفر است زیرا الله سبحانه وتعالى مفرماتك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الله سبحانه وتعالى دارين عليك ريما أزعمالك حسانيك خدا مؤمن فكر مكنا خدا مؤمن بما أنزل الله فكر مكنا لكن محكمة وفايسلرة بطاغوت مبرا از اعمال اینها انکار میکنن. خب مفسرین کرام میگن که کسانی که خدا مؤمن به معنظر الله فکر میکنن لیکن فیصله و معاملات خود را به طاغوت میبرند، اینا کافر هستن. دانست یا ندانسته زیرا در این آیه کریمه الله جل جلال جلاله میفرما که یریدون او، اینا اراده دارند که فیصله خدا به طاغوت ببرند. محکمه خدا به طاغوت ببرند. اگر چه ای جا، بعضی ها سوال میکنن که کسانی که نادان هستند جاهل هستند خبر هستند و غافل هستند در حکم اونا سوال میکنن که اینا اراده ندارن. اما مفسرین میگه که اراده یک فیل قلبی هست وقتی که ای مصاحب به با فیل باشه مصاحب به با قرائن امارات قصد باشه و یا مصاحب و همراه به با مطابعت باشه ای خود دلالت به اراده قلبی میکنند وقتی که اراده قلبی که ثابت شد ای حکم الله برش جاری می شود که این حکم کفر است. کسانی که مطابعت از تاغود میکنن، کسانی که اطاعت از تاغود میکنند دانسته یا ندانسته این خود کفر است. جهان سپاس مولیسی محترم که وقت قیمت به هایتان خدمت ما و شنوندگان عزیز رادیو صدای خلافت قرار دادید و امیدوار هستیم که قناعت شنوندگان عزیز نیز حاصل شده باشد این بود داشته های برنامه امروزی تا برنامه دیگر که باسم با معلومات جدید در مورد تاغوت در خدمت شما قرار میگیریم همه شما را به الله لایزال میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته قیام حجت پرسیش های داف قایم کردن حجت قبل استطال مباحثه سیاسی، فرهنگی، فکری و اقتصادی در مفاهیم شرعی <متصفح> پنج شبها از رادیو صدای خلافت 90 FM مسلمانان گرامی این بود داشته‌های برنامه امشب ما